لمو همس ناین معرف دید لا حفر رو اوزی دو جه و از اسماع دائمون اضافه است مزافن اولای نشون چیزیه که قسمیه رو به فهمونه باشه و قسمیه رو فهموندن دارن در یک لحظه فهمونه با تفر روح نفهموندن اوزی کلا و کلا شولا و کلا نایب وایم و کلا اوزی با لشی می موخ متعلق است که و چه با مثل و حاجت رو داره مستقل نهادن مفهومه ناهمی بلده مفتن مفتن شده نعد یکی نظر جنس باشد و یکی در بلا تفرقه جار و مجرور نه دوم مفهم باشد دولیت و معذب هم باشد ها؟ و بدون خفرقه هم باشه یعنی هم ولا عمله وقتی باید معرفه باشه و باید به وسیله حثاعات هم از هم زید زید نباشه هم بشه اینطور و به چیزی که به فهمانه دوییت را لفظاً با هم لفظاً دوریت را می فهمانه دیواختانیشم کشت و هم معناش معنای چیه او اون فقط یا نه دویت رو در معنا می در لفظ چیه مفرد به مفرد معناش اون دیگه اثنینیت بوده فهمانه حالا اثنینیتی رو که این فهمانه هم دیم دویدیت گراید یا در معرفه معرف هم باشد اون مکنه اثنان دل و, و متفرگ به غیر تفرگوه هم نبشن. مخون باید که دامنه به نظریه تفاوت وجودی به لا تفاوتی به اصل به سبب هر چه و وظیفه انتخاب مثال مثال دید. جا علی کل از رجلی یعنی وقتی واقعه شد لفظاً و معنا چی است تضمین است آه معلمان هست بدونه تفرمحانی دو آن نمی اغلبش ببین او چلا ها اذا ايذو ذا چی؟ و کلا اگه اضافه بشه به معرفه که اسمی ظاهر احرابش چجوریه؟ احرابش تقدیبیه یعنی میبینید جا همین کلر کلر مرض تو به کلر رزولیم اما اگه اضافه بشه به زندیر احرابش احراب ها؟ از اون اعباد این و ما این مساله ان این نل و مدا و کلا ازدواج کردند و بعد این نل خیلی، این این خبره ولی شر از مجای نفتی مدا یعنی نهایتن قایتن میگه برای خیر و شر خلاصه چیه؟ انتهای این هست نهایت ایست و کلا زالک و هر روی این ها کلوم نیتا؟ خیر و شر انا زالک اسم اشاره بعد برمیگرده به خیلو معناش تصمیه هست اما لفظش چیه او معنان قبطه و کل آزامه با آتفه کل آزامه هر دوی اینها وجمون و قضایی رو میارن لعب نیسان نیسان روی دارن و رو آرنگ. کلا و و الان زالک اینجا به چی برد میگشت؟ به رو میگه میگه لا فارزون ولا وکرون لا فارز و فارز نباشی دکره نباشی نخلی دیر نخلی جوان متوسط بین این دو زالک برمیگرده پس داری این که اشاره برگردن به و معنای تصیبه درست حالا پس فرمانی گفت چرا اینطور اضافه میشه میگه ولای اضافه به از از اضافه نباید بشن به مفرد شون باید اضافه شن به چیم؟ منکره به نکره هم نباید اضافه بشن باید اضافه شن به خلاف برخلاف از ها نظر کی نکره یعنی کلا رجله از نظر اینها چیه کلا که درسته هم بگیر ولال مفرلقه و به چیزی که باشه با حرف هم جدا شده باشن و با حرف باشه هم اضافه نیمشه این چیه؟ دیگه با یعنی قابل ریاست افته هم با و شد این درد و شد دارد اخی و و علما به ما از همین جلسه یعنی مصیبات مصیبات ها ما نزور مصیبات نائبات بسیارتی نشکن یعنی دعوت نابنی نسبه ها نابن یعنی میشه چی؟ مصیبات مسائل. از او بازی میگه کلا اخی هر دو برادرم و دوستم کلا اخی و خلیدی آه. هر دو برادرم و دوستم خلیدیت میگه اخی کلا مقدار واجدی رو بشه واجدی زامی وائلشه اون یا مخدول اولشه عزدان مخدول ثانیشه میگه هر دو برادر من و دوست من یقین کننده بودند عالم بودند مرا عزدان باذویی منظور از اینکه مرا باذویی یقین کرده بودند یعنی, یعنی, یعنی چی یعنی مثل زیدان حسدان عزدان یعنی چی شجاع اینجا عزدان یعنی چی یعنی معینان مساعدن ناصرن لذاب به نائبات متعلقه به حسودن من رو باور داشتند یاوری در ها و نزول مشکلات نائبات متعلقه به حسودن مثل که بگیم زیدون حسدون فیل مدرسه زیدون حسدون فیل مدرسته یعنی چی؟ یعنی زید شیر از در مدرسه زید مبتدا حسدون خبر در مدرسه متعلقه به حسد اگه بگم چرا میگیم چون حسد در برد دارد معنای آه... شجاعون رو و شرف است و فیه رائهتون منن فیل و جارو برشون میتونه بهش چیه؟ دارد. نقطه سر خط یکی از دوتا از اسماعی لازم و دیگر رو هم از اینجا به بعد شروع میکنه به بحث ایور که دو مرتبه به طور مفصل که بیشتر من این ایور رو گفتم در سمنیه گفتم و در کتاب تحزیم هم کاملش شد حالا اینجا باز ما به طور خلاصه این مطالب رو جمع جور میکنیم و تحویل شما میدیم دیگه بعد از این شما در شناخت ایور و ترکیب ایور هیچ کنه مشکلی دوید ایور بر چند قسم است قسم هایی که اضافه میشن رو ایشون تو این بحث عنوان میکنه اونایی که اضافه نمیشن داخل بحث ایشون بگیر نیستن عنوان نمیشن مثلا یک قسم ایو ایوی ایو وصله نداست که اگر منادامه معرفه و فلان باشه ایو میاریم مبدی بر زم نمیشه یا ایوهن رسول یا ایوهن رسول و رسول رو هم باید صابه لفظ ایو که تا نشون بده منادای واقعی رسول نظام معقوم یا ایو هر رسول این یک قسمت درس قسم دیگه ایو ایو نکایتی که باز تو این کتاب کار این بود بیاتونه یه نفر میگفت جا انیرا دیشب مردی اومد خونه ما شما می‌خواستید بگید چی گفتید چی ایو مو گفت جا انی رجلان گفتی چی؟ ایان جا انی رجلان ایان جا انی امرهتان جا گفتی چی؟ ایان بهش گفتن ایوه چی؟ حکایت برای حکایت مکار این هم باز اضافه بگید نمیشه داخل مبحث ما نیست اما پنج قسم ایوه دیگر دارید ایوی شرط استفهام موصول ایوی وصفیه که خودش دو قسمه یکی صفت واقع میشه بعد از نکره و یا حال واقع میشه بعد از مرد این پنج قسم ایو یا بنابر قول سای کتاب ما چهار قسم ایو از اسمای چی هستند؟ دائمان ایوی وصفیه به دو قسمش صفت و خال مورد است ایوی شرطیه اون اصلا اهلتی برای بنا هم نداره. ایوی شرطیه و استفامیه هم مورد است چرا چون با شباهت معنویش به ان شرطیه و همزه استفاقیه معارضه کرده لزوم و حل اضافه همونی که داری میمونه ایوی, ایوی موصوله در یک صورت مبنیست در بقیه صورتش چیه؟ مورد اگر اضافه بشه و صدرسلش حضف شده باشه مثل اکرم ایهو کریمون لننزعن نمیل کن به شیعتن ایهو اشد دو علم یعنی هو شد در این صورت مبنیست در بقیه صورتش چیه؟ خب حالا عیوب به تمام اقسام شما یاد گرفتیم حالا این عیوها به چی اضافه میشن یعنی مضافونه ل این ایو مثلا ایوی وصفیه فقط به چی اضافه میشه نکره ایوی وصفیه فقط به نکره تا بتونه صفت واقعش برای نکره یا حال واقع برای معنی چون حال باید نکره ایوی شرکیه و استفاقیه و موصوله چی؟ اینا چطور؟ اینجایی که هیچ کار میکنه پایان میکنه میگه ولا توزه لمفردن معرفن اگر ولا توزه به و ضمیر انده چیه وجودی لام به و متعلق است به لا توزه. اضافه نکن به سوی مفرد معرفه نعت مفرد به سوی مفرد معرفه اضافه نکن حیان حیان چیه؟ مفعول لا توزه ایو را به سوی مفرد معرفه اضافه نکن در ایو وصفیه که اصلا به سوی تصنیم اضافه نمیشه میمونه حلیه شرطیه و استفقامیه و چی؟ محصوله میگه اینها به مفرد معرفه اضافه نمیشه بلا تو زفل مفرد این, این میگه اصلا نمیتونه اضافه بشه میگه بله میگه و این کرر تقام و ازفی و این وقابه آتفه چرا چون گفتیم فعل شرط جزایش جزای شرط اعتبار در این شاو اخبارش به کیه؟ به جزایش. شرط جزاش فعظه میگه این کررتها فعظه میگه در هیچ صورت اضافه نمیشه میگه چرا؟ اگر یک زمانی تکرار کردی علیو میتونی اون موقع به چی؟ به مفرد معرفت کارش کنی؟ اضافه کنی یعنی مثلا بگی علیو زیدن و علیو عمرن آ اینطور. و این کردرته ها کردرته ها فیلو فایلو مفهور فافای جزا فعظف فیلو فایل جزای شم یعنی فعظف چی؟ فعظف این لمفردن معرفه پس اضافه کن این یو رو به سوی مفرده معرفه او میگه فقط در صورت تکراره میگه نه او تن ول اجزا است او تن به اجزا است یا جایی که در تقدیر میگیری در نیت میگیری چی رو بگید اجزا رو یعنی قبل از مضاف مثلا بعد میگاد میگه ایو زیدن حسنون ایو زیدن حسنون یعنی چی یعنی کدام جزء از اجلای زید زیواست اگه ایو زیدن حسنان یه جا دیدید بگید بوده ایو اجزا زیدن حسنان مثل وسعله قریت هست مزاق افتاده مزاقه لجاش میشه هست او تنویل اجزا هست عطفه بر کرلت هاست تنویل به خاطر همین هم مجزون شده عطفه بر کرلت هاست فائلش دمیره هم تست ال اجزایه چیه برسان اونتن به عجزاه هم حالا بیاری پایی چی گفتیم خلاصه اینجا؟ گفتیم ایو به تمام عقصانش به سوی مفرل معرفه اضافه نمیشه ایو زیدن چه استفاب چه شرط چه موضوع بگید بلد است. بعد یه استثناء زدیم گفتیم ولی اگر تکرار بشه بگیم ایو زیدن و ایو امرن یا تقدیر اجزا قبل از مفرد معرفه بکنید به سوی مفرد معرفه چیه بیایی کنید بلا تو زفر مفرد معرفه این بقلش می دمیسید مطلقا این قیدهایی که میگم به چون از عبارت این قیدها در نمیاد بزار کار با مشکل کرد مطلقا مطلقای این چی؟ یعنی به همه اقسام قیو اضافه به سوی مفرد معرفه نمیشه بله از افعل مصنن بلکه اضافه کن ایور به سوی تثنیه او مجموعه یا به سوی جمع مطلقا مطلقا این چی چه تثنیه و جمع معرفه باشد چه تثنیه و جمع بگی نکره باشد چه بگیم ایور رجلاین چه بگیم ایور رجلاین چه بگیم ایور رجال چه بگیم ایور جاله ها او مفرده نمو نکره یا اضافهش کن به سویه بگیر، مفرده, مفرده نکره به ایزن به اوتلا به مفرده نکره یا به سوی تصمیه و جمع مفرده تصمیه و جمع معرفه ها نکره یا به سوی مفرده نکره و این کردرته ها فقط و الکورته ها اونها رو بنویسید ای ایو عل استفامیه اگر تکرار کنید فقط ایوی استفامیه رو میتونید اضافه به مفرد معرفه کنید پس برای همین ایوی شرطیه و ایوی موزوله به هیچ وجه به نوع مفرد معرفه اضافه نمیشن ولو این که چی بخوای تکرارش کنید علل فقط ایو استقامیه است که اگر تکرار کردی به سوی مفرد معرفه میتونه محرفه. و هنگامی که رد تها ای ایو ال استقامیته فعذت ال المفرد المعرفه پس اضافهش کن به سوی مفرد معرفه مثال بزن دیگه چش الان یه مثال میزنه نحو مثال فلئن لغیط و کن فلعن لغیتو چه خالی اینه فلعن لغیتو چه خالی اینه لطعلمن ای و ایوکه ای فارس الاحزابه شاهد سر ای و, ای و, ای و هست اضافه شده به سوی مفرد معرفه یا و زمیرم دیموت کلم میگه فلعین فا فای آتفه لام لام توتعه قسم بر مقدم شده اگه قسم بر شرط مقدم شد و قبلشون زی خبری نبود جواب رو برای کی میاریم اونی که مقدمه لعن شکرتون لعزیدن نکن لعن کفر تو این نعذابی هر دو جا جواب برای قسم اینجا جواب برای قسم لعن لغای تو که لغای تو که فعال و فایل و مفعول فعل شرطه خالی این حال است از برای تا کام هم فایل هم بیان هیات هر میگه اگر با تو به خدا قسم اگر با تو رو در رو بشم تک تک خالی تو خالی باشی منم خالی تک تک کسی؟ نبوشیم رو در رو بشیم لطعلمن لان و نون ترک جواب هسته لطعلمن انت یقین خواهی کرد تو اگی و ایوکه فارسان احزا یقین خواهی کرد کدام یک من یا تو اسب سوار جماعت هاست اسب سوار اقوام هست است. هست اون موقع می که اسب سوار این احزا سوار این احزاب سوار کار درجه یکی این احزاب بگید چیست؟ این عیم مبتداست؟ ایو که عطفه به جایوست فارس و لحظاب قبرشه این الان لفظش مبتدا خبره، اما لطه ازش تعلید شده محلن چی هستند؟ منصوب هستن مفهوله؟ لطه علمان بابه چی چی؟ تعلید سیعلمون لذین از علمون عیمون غلبین؟ یعنی شد درست چون استفهام بوده چیکار کرده؟ تغییرش او ان تن ول اینو بنویش قبلش که بگه چی؟ تنوع تو جایه؟ کذر او ان تن ول اجزاء ف اگر نیت بکنی اجزاء را یعنی نیت بکنی تقدیر بگیری انتقدر الاجزا هست اگر تقدیر بگیری هنجزا رو قبل از مزاق درست شو فعضه فایل پس اضافه کنی، چی؟ را به سوی مفرده نه. نه و مثال ایو زیدن حسنون پشتش الان از فوال بزنید ایو حسنون این جمعه را اگه خواستی ترجمه کنی نگو کدام زید زیباست بلکه باید بگی چی؟ کدام جز از اجزائز زیباست مثلا اون جواب بده وچه بود یدو بود ایو زیدن حسنون ای ایو اجزائی حسنون مضاف افتاده مضافن لجاش بقل ای تیکه بنویسید هازل حک هازل حک جارن حکم جارن فی کل الأعصاب گلش؟ دونه سفر دونه سفر جارن فی کل الأعصاب دونه سفر این تنبل اجزا در استفاده میاد در بگیرد. بسوول میاد در شرط هم میاد در صفت نمیاد چرا چون ایوی صفتیه اصلا به سوی معرفه اضافه نمی حالا چی نیت اجزا بکنی یا نکنی سوال به انفعالی میشه پس ان کردن ارتهاش فقط مخصوص کیه استفهامیه او تنبل اجزارش مخصوص کیه هم استفهامی هم غیر استفهامی پس اگر یه جایی دیدیم مثلا ایو شرطی اضافه شده به مفرد معرفه چی کار اونجا نیت اجزام کنیم. تا کلام چی بشه؟ سرزام. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم ایو به سوی مفرد معرفه اضافه نیمیشه. تصمیه و جمع معرفه و نکره یا مفرد نکره. و اگر تکرار شد به مفرد نکره معرفه هم اضافه میشه در استفهام؟ اگر نیت اجزا قبل از معرفه شد مفرد معرفه اضافه میشه به مفرد معرفه به طور عموم به جز ایای مصری نقطه زرفه. حالا از اینجا به بعد از اینجا به بعد میخواد شروع بکنه بگه که هر کدام به چی اضافه میشه هر کدام بگی به چی گفت به مفرد معرفه اضافه نمیشن خب حالا میمونه چی مفرد تصنیه جمع نکره تصنیه و جمع معرفه آیا همهشون به همه اضافه میشن؟ ببینید چی. بگه. میگه وخصوصبل معرفت اگنمال من که بهم ا اگر نداره. مخصوصبل معرفات گن موصولتا و به عکس سفر او تن بلعذزاء و خصوص بل معرفه این موسولتان و بلعکس سفه. ما شما موسولتان هایی هستید، با... فهمید کن موسولتان، اونطور از و بزنید بله، و خصوصان، تاکید. و خصوصان بل معرفت. موصولتا اند و بل عکس سفر حالتی را که چیزی ببینم که و بالمعرفته و بالمعرفته بل معرفته و بل سفر و خصوصاً واو واو و سند ووا عاط خص و نون دل معرفته متعلقه به اخصوصا موصولتا این موصولتا حال از این این مقبول اخصوصا مقبول اخصوصا گفت گفت و مختص بکن ایو را در حالی که موصوله هست به چی؟ به معرفه پس ایو موصوله فقط به چی اضافه میشه؟ به معرفه کدوم معرفه؟ تصنیه و جمع البته میتونه به مفرد معرفه هم اضافه بشه به شرط اینکه که تقدیر ایسا کن پس تصنیه و جمع موصولتن اگر و بل اکسه سفر واقع و حالیه است بل العكس خبر مقدم از صفحه مبتداه مؤخر بل عکس صفه یعنی به عکس تعریف موصول است ایای بکی وصفیه یعنی چی یعنی ایای وصفیه فقط و فقط به چی اضافه میشه به سوی نکره حالا مفعل تسبیه فرقی فقط به سوی نکره و بل عکس صفه بعد نمونه چی الان ایای موصوله رو گفت وصفیه وصفیه‌رم کو کو با یه اصوله به معرفه تصنیه و جمع ایوه وصفیه به چی نکره مفرد تسیه جمع فقط میدونه ایوه شذیه و استفهام یک تو بیت بعد میاد بی مثال مخصوصاً بل معرفته با اشتراط ماسبقه موصولتاً ایام ایورا در حالی که منفوله است فلا تو صفه فاعلا نکرهت پس اضافهش نکن به سوی نکره ایوی محصوله اضافه به نمیشوند بقیدش کنیم سید. به دلیل اینکه اضافه موصول به سوی نکره با توجه به اینکه موصول جزء معارف است اضافه معرفه به سوی نکره بگیم معقول نیست آخه معرفه به نکره اضافه شید که چی؟ کسب تعریف کنه؟ یا کسب اقصیص کنه اضافه معرفه به نکره؟ معقول نیست موضوع هم چیه؟ بگیم معارفه. چون معرفه هستش اضافه معرفه به نکره معقول نیست فلا توزه فائل ها نکره پس چند تا مثال برای اصول فعلا هم ما دو تا یکی مثال بزنیم که چی باشه؟ تصنیه باشه یکی مثال بزنیم جمعش مثلا مثال تصنیهش اکر اکر ایوهما کریمون مردیشون مثال حالا <تصفح> آره اگر ایو قوبه بزنیم قبل از کریم باید بخونی چی؟ ایوهما قوبه کریم اکرم ايهما هو و حالا اگر هم هوا رو هم هورا حذف کنید میخوید چی؟ اکرم عین کریمه هو باشه هم هست شه میشه اکرم عین هو و درست این مثال تصمیم جمعش هم که خودش مثال زده و آهیه مشهور که فرصش هم کردیم سم ملنن زعنن من کل شیعتن ایهم عشد دو علالرحمنه ایتی یاد لنن زنن جواب قسم دیگه لامون من کل شیعتن متعلقه به لنن زنن من. من کل شیعتن ایهم لفظم هم میبرزم به محلن چیه؟ منصوب مفهول لننزه همون از اضافه شده به همون دو خبر یه که سر بوده و هر سره است خوبه عشد دو, عشد دو. اتیگن اتیگن یعنی از جهت سرچشید و سیانه و بل عکس و به عکس این ایوی چیه محصوله هستش ایو از صفتو ایوی چی؟ صفت ول حالو ولحالو میگه و ایوی حالیه چرا چون درست میگه نه یا ما قبلش نکره است میشه صفت یا ما قبلش معرفه میشه حال فلا یوزافان لاهلا نکره نکرده اینها اضافه نمیشن مگر به سوی نکره چرا فقط به نکره اضافه میشن زیرا که میخواد سفر برای نکره بشه وقتی میخواد سفر بشه پس با چی به نکرره اضافه شده باشه کسب تعریف نکنه. و هم میخواد حال واقعشه برای معرفه وقتی میخواد حال واقعشه برای معرفه حال باید چی باشه؟ نکره باشه. پس بنابراین اصلا سفر واقع شدن برای نکره و حال واقع شدن افتضی اضافه شدن به چیره داره نکره. فلای و زافانه الا الا نکره کمرر تو به فارسن ایه ایه یه تشکیل بذاری زیرش کسره ایه فارسن محرده و صفت هست برای چی؟ برای فارس تحویل به مشتقم میره میگن مرر تو به فارسن کاملن به فروزیه یعنی کامل بود در عصف سر. و به زید ایه فارسه ایه فارسه یه تشکیل بذارید بالاش بده یعنی مره رو به زید کاملا فلسروزی داده در حالی که کامل بود هم تمام بود در هزب این این کدومشون سالزه ایه چی وصفیه رو هم صفت شد هم شد. حالا تو این تیکه که الان میخواییم بخونیم اگه تو چی رو میخواید بحث کنیم ایو شرط و استفهام میگه ایو شرط و استفهام قیدی ندارن و انتکن شرطم او استفهامن و مطلقا کم میده به حل کلامها اگر ایو ایو شرطی گست یا استفهامی گست مطلقا میتونیش کار کنیم اضافهش کنی. چه به معرفه چه به فقط به مفرد معرفه اضافه از اون موقعی که چند تا مثال لازم داریم ده کنن پنج تا برای شرطیه پنج تا برای استفامیه. چون اینا میتونن به مفرد تصنیه جمع نکره تصنیه و جمع معرفه زماشه پس ده تاش از تو استفاق مثال لازم داریم چند تا برای صفتیت داریم تصنیه جمع هم میشه دیگه ها بعد میمونه موصوله موصوله چی دو تا درسته موصوله هم دو تا تسنیه و جمع تعریف خوب و این یکون شرطا او استفهاما حالا اگر شرط باشد یا استفهام کم کامل به هر کلام هم. و ان واب واب به عاطفه چون اعتبار به چیه؟ به جزای شرطشیه کم نه تکن فعل زمیر ایو اسمش فعل شرط بیگر اجزام شده شرطا او استفاما ده هم عط شده خبر تکن فا فای جزاییه مطلقا یعنی تکمیلا مطلقا مخبول مطلق ولی کم کمل به ها الکلامه کمل به ها الکلامه کمل فیل و فعل. به ها متعلق به کمل الکلامه مفعولان تکمیل کن با این ایا بگید کلام را همه احسانش شده بگید کمل به هل کلامه مطنقا یعنی تکمیلن مطنقا تکمیلی که هیچ قید و شرطی بگید ندارد محفت دستی جمع همه و همه الا مفرده من و این یکون حالا اگر اعتبار لفظ کنیم در ایومی کن، یکون اعتبار کلمه کنیم میگیم چی تکن و این تکن شرتن او استفاقاما و مطلقا و مطلقا ای سوا اون قصیف ایلا معرفته او بکن فردی کم به ها الکلا من الان پنج تا مثال باید برای چی بزنیم؟ شد پنج تا مثال برای ازدفعام فقط مثال که میزنم و خوب تغطیق بستشیم نه و ایمل اجلیل فلا ادوانه حضرت شهر به موسا گفت گفت اگه دختر بزرگر رو میخوای ده سال باید چوبانی من کن کوچه کرا هشت سال بعد هم گفت هر کدام از این دو تا وقت رو تمام کردی بیا آوردار ببین هیچ مشکلی بحثی نیست فلا عبانه فلا عبانه علیه ظُلمی در اپلیکیسی بچا ایعمل عجلین اون ما چیه ما زیاد است اضافه شده به سوی العجلین غزایی تا بهره شرط شده و ما علیم هم متعلق به همین وضعیت هست زرد شد فلا ادوان هم جزای شرطه لاشلای نفذ جنس ادوان اسمش حلقه مقدر هم حلقه جمعهش محلن بگیم مجلوم چون بعد از پا در جواب چیه شرط جازه فلا ادوان هم این مثال کدومه عیو که اضافه شده به تصمیهه بگی معرفه حالا بعدش باید چی مثال بزنیم؟ جمع معرفه درسته؟ بعدش باید جمع معرفه مثال خیلی رسید ایور رجال ایور رجال یعتنی ایور رجال یعتنی فلهو در همان رجال یعتنی فلهو ببین الان یه چیزی رو باید استنباد کنید ایور رجال یعکنی چی اومده یعکنی؟ مفرد اومده مجدوم شده نم نگفته یعطونی گفته چی؟ یعطونی بعد باید ستا مثال بزنید برای نکره اضاف شده مفرد تسمیه میه جمع ای... ایور اجوله ایور اجوله جاانی فلهوده را از صده به مفرد نکره ایو رجاله اینه ایو رجاله اینه اکرمانی اکرمانی فلقوما ده همون چیم اومد تصمی مطابقت کرد در نکره ولی اونو نگاه کنید ایو لجال یهتنی فلقو نگفتم فلقو خوش میکنید اینجا میگیم چی؟ فلحوما در همون حالا نگاه کنید نکره شو مطابقه کنید ایو رجال ایو رجال جاونی یا اکرمونی فلحون در, فلحو در چی نتیجه میگیریم؟ که اگر ایو اضافه بشه به معرفه زمیری که بهش بر میگرده چی بر میگرده اگر عیو اضافه بشه به سوی نجере، زمیری که بهش برمیگرده چی بر میگرده موفق. اینو استنباط. این های عیو شرطی داره. ف به عیزامبن قتلات، به عی متعلق است به قتلات. زامبن مزاحم نلایی. به عیزامبن قتلات. بعد ایه حدیث بعده او تائمنون مثلا اون برگردان بده بعد یه حدیثن مطالاست که تائمنونه بعده او هم صفت برای حدیث بعد ایه حدیث بعده حدیثی که بعد از این قرآن باشه به با کدام حدیث بعد از این قرآن تائمن شما میخواد ایمان بیاره دیگه نمیگم تعجزم بن مطلق مفرد حالا بعد چی میاریم؟ تصمیه نکره. بعد جمع نکره. بعد تصمیه معرفه. بعد جمع معرفه. حالا نگاه کنیم. برای تصمیه نکره. ایور جلعینه. ایور جلعینه. جا آ. ایور جلعینه جا آ. اینو چی کار کرده؟ متابقه بگیرم. جمعش. ایور جالن جا اون. ایور جالن جا اون. مطابقت کرده یا نه, نه. میان سر معرفه ها ایور رجلین ایور رجلین آدلون مطابقت کرده یا نه؟, نه. نه ایور رجال ایور رجال. عادلون مطابقت کرده ای یوکم ببینید البته آیه قرآن ببینید یوکم یعتینی و عرشها از حضرت سلیمان گفتار گفت یوکم یعتینی به عرشها گفت کدومی که شما میتونید برید تخت دلفریس رو بیارید یوکم یعتینی به عرشها مطابقت کرد یا نه حالا این فرعون همینی که من گفتم و میگه شما باید این رو استنباد کرده باشیم همین رو میگه نگاه کنیم فرعون ازا ازیف ایو ازا ازیف ایو الا مسنن او جمع معرفت اضافه بشه به سوی تصمیه یا جمع معرفه چون یک وقت دست نیرات جمع قطعیه افره در زمیر رو ها زمیرش چی میاره؟ مفره او الان نکرته؟ تو ببر اگر به نکره اضافه بشه چی میشه؟ مطالفت برعکس کلاست ببینید الان دفت کنید یه مثال بزنم الان یه دونه میکنم بنویسید مضافه بسید, بسید. معرفته بریمسی کلا اگر اضافه شود به سوی اسم ظاهر معناش میشه هر یک کلا اگر اضافه بشه به سوی اسم معناش میشه تی؟ هر یک و اگر اضافه بشه به سوی نکره معناش میشه هر دو چی؟ اضافه بشه به سوی زمین در چی؟ کلا اضافه بشه به سوی زمین معناش میشه چی؟ هر دو هر دو الان یه مثال میزنم میبان کنیم کلتا الجنته کلتا الجنته آتت اکده آتت فل زمیر فایدش بر میده روی چندتا مفرد اومده نه؟ چون کلتا اضافه شد به سوی چی؟ اسم زاهر آتت اکوله ها زمیر برمیگرده ها به کی؟ به کلتا اکوله ها مخور سانیه آتت الان ترجمه ای میشه چی؟ هر یک از اون دو بهش میدهد میوه خودش رو به طور سوا این میده اونم می درست؟ درسته؟ حالا اگر اضافه بشه به سوی زنیر معناش میشه هر دو مثل این جا از ار رجلان جا انی ار رجلان کلا همان جا انی ار رجلان کلا همان جا انی رجلان کلا همان. همان معناش این چی؟ آمدم پیش من هر دوی اون مرد ببینم معنای این رو تونستید درک کنید یا نه الان اگر من این طور برگردم بگم برگردم به شما اینطور بگم بگم کلر رجلین بگم نمیسیدیم مثال رو گرفتی گرفتید یا نه اینجور گفتم کلر رجلین اعتانی در همان کلر رجلین اعتانی بگید در همان معنا شنی چی؟ کلر رجلین هر از دو مرد اعتانی درهمو من چند تا درهم دارم؟ دو تا درست اگر بگم اعتیانی بگم زیدون و عمرون اوزه اینطوری بگیم بهتر زیدون و عمرون زیدون و عمرون کلاهما اعتیانی در همان هر دو به من یه در هم دادم. میشه چند من چند در هم دارم؟ یک بروز الان پس نتیجه که از این دوتا مثال بگیریم میگیم چی؟ میگیم کلا اگر اضافه بشه به اسم ظاهر زمیرش چی میاد؟ مفرد میاد کل از رجوله این اعتانی در همان مفرد میاد و معناش میشه یک اگر اضافه بشه به سوی زمیر مطابق میاد و معناش میشه چی؟ هر دو ایّا هم همینطوره فقط این به سوی معرفه اسم ظاهر و زمیر بود اون به سوی چیه ده. معرفه و نکره است به سوی معرفه و با... نکره است الان مثلا اگر به سوی معرفه اضافه بشه معنیش میشه چی هر یک ها مثلا ایمل اجلین خزایته فلا عذره یعنی چی یعنی هر یک از این دو تا وقت رو بگذرونی مشکلی نیست اما اگر به سوی نکره اضافه بشه معناش میشه چی؟ هر دو درست شد؟ لذا چی میاد؟ اگر به سوی نکره اضافه بشه مطابق میاد دو به هر من چون بحث کلا و کلدان قبلش کنده بودیم کلا و اینجا آنوان کردن که بهتر دوتاشو با هم قیاس مثلا. الله